کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده شاهزاده نامرئی یکی بود یکی نبود فرشته ای بود که خداوند قدرت زیادی بهش داده بود یعنی زمین دریا آتش و هوا زیر قدرت او بودن این فرشته چهار پسر داشت بزرگترین اونها که زرنگ و سرزنده بود ذهن روشنی داشت الهه آتیش بود به نظر فرشته آتیش با ترین انصار طبیعت بود پسر دوم که عقل و شعورش باعث می شد هرگز اشتباه نکنه قدرت زمین رو تو دستش داشت. سومین این پسر وحشی و درنده خوب بود و فرشته که از این اخلاق پسرش خجالت می برای اینکه که زیاد به چشم نیاد او را الهه دریاها کرد. کوچکترین پسر که اسیر حوثهاش بود و رفتار ثابتی نداشت شاهزاده هوا شد. او کوچکترین بچه بود و همین باعث شد که برای مادرش خیلی عزیز باشه اما با وجود علاقه و محبت زیاد فرشته به پسرش زعفهای او را نادیده می گرفت. او پیشبینی میکرد روزی پسرش به کسی علاقه مند بشه و به خاطر این علاقه رنج زیادی بکشه بنابراین فکر کرد بهترین کار اینه که اونو از زنها بترسونه و با خوشحالی متوجه شد نفرت و ترس او از زنها روز به روز بیشتر میشه پسر از کودکی داستانهایی درباره شاهزادههایی که به خاطر عشق دچار مشکلات زیادی شده بودند شنیده بود در تمام مدتی که این مادر عاقل قلب پسرشو سرشار از کینه نسبت به زنها میکرد در عوض سعی میکرد او رو به شکار علاقه کنه و پس از مدتی این کار بزرگترین سرگرمی پسر شد فرشته برای تفریح پسرش یه جنگل پر از درختهای پربار و زیبا ساخته بود و از انوای حیواناتی که در چهار گوشه دنیا زندگی می به اون جنگل آورده شد او در وسط این جنگل قصر زیبایی ساخته بود که در تمام دنیا مانند اون وجود نداشت بعد احساس کرد همه اینها برای خوشحال کردن شاهزاده کافی هستند حالا وقتش بود که دوباره بدگویی از الهه عشق را شروع کنه ولی یه مرد هرگز نمیتونه با تقدیر بجنگه شاهزاده ته قلبش از حرفای مادرش درباره این موضوع خسته شده بود یه روز که فرشته برای انجام کاری از قصر خارج شد از او خواست از خانه دور نشه پسر بی به حرف مادر فوری از قصر بیرون رفت. او خیلی زود نصیحت‌های مادرش را فراموش کرد. از تنهایی حوصلش سر رفت و به هوا دستور داد که اونو به سرزمین همسایه ببره. این سرزمین در جزیره گله سرخ قرار داشت. آب و هوای خوب اونجا باعث شده بود. همه جا سرسبز و گله همیشه شاداب باشند. موجهای دریا به جایی اون که خودشون رو به سخراها بکوبند به آرومی روی شنهای سائل پیش می رفتن. تمام سرزمین رو بیشه های تلایی فرا گرفته بود و شاخه تاک زیر سنگینی انگوره ها سرخم کرده بودند. پادشاه این سرزمین دختری به نام روزالی داشت که زیباترین دختر دنیا بود. به محض اینکه چشم شاهزاده هوا به او افتاد، همه چیزهایی را که از کودکی در مورد زنها براش تعریف کرده بودند، فراموش کرد. گاهی اوقات در یک لحظه نقشه های چند سال نقشه براب میشه. او فوری به این فکر افتاد که چطور میتونه خودش و بگذرونه و بهترین راهی که به فکرش رسید این بود که با قدرتی که داره، روزالی رو از اونجا ببره. به راحتی می توان تصور کرد وقتی پادشاه فهمید که دخترش ناپدید شد چه حالی پیدا کرد. او شبانه روز گریه میکرد و فقط زمانی کمی آرام میشد که با شاهزاده جوان و غریبه که به تازگی وارد قصر شده بود درد دل میکرد. افسوس او نمیدونست که غریبه چه علاقی به روزالی داره چون او هم دختر را دیده بود و به او علاقه پیدا کرده بود. یه روز پادشاه قمگین از همیشه در ساحل دریا قدم میزد که بعد از یک سکوت تلایی شاهزاده غریبه که همراش بود ناگهان گفت هر مشکلی راه حلی داره اگه قول بدی دخترت رو به همسری من در بیاری من اونو پیش تو برمیگردونم. پادشاه جواب داد تو میخوای با این حرفا منو آروم کنی؟ من با چشمای خودم دیدم که او به هوا رفت و التماس‌های او دل همه رو به رحم جز دل بیرحمی که او را از من دزدید. دختر بیچاره من الان در یک سرزمین ناشناخته داره، از بین میره، جایی که شاید تا به حال پای هیچ آدمی زادی به اونجا نرسیده باشه. من دیگه اونو نخواهم دید، اما تو غریبه مهربون، برو اگر میتونی روزالی رو برگردونی؟ و تا آخر عمر در این کشور با او زندگی کن و ولی عهد من باش. پدر روزالی نام و مقام غریبه را نمیدونست، اما او پسر پادشاه جزیره طلایی بود. پایتخت این جزیره شهر بزرگی بود که از یک دریا تا دریای دیگه ادامه داشت. دیوارها با آب پاک شسته شده و پوشیده از طلا بودند. داخل اونها، درختان پرتقال لیمو کاشته شده بود و خیابان ها از طلا بود پادشاه این جزیره زیبا یه پسر داشت که هنگام تولد زندگی پر ماجرایی براش پیشبینی شده بود این موضوع باعث وحشت پدر و مادرش شد اما همون موقع فرشتهای ظاهر شد و سنگ کوچکی به او داد و گفت که این سنگ کوچیک میتونه تا جوونی از شاهزاده مراقبت کنه به این صورت که اگه او اونو در دهانش میذاشت ناپدید میشد اما یه حرف میزد سنگ قدرتش از دست میداد فرشته مهربون امیدوار بود با این روش شاهزاده از همه خطرات در امون بمونه خیلی زود دوران کودکی شاهزاده طی شده او هوس کرد به بقیه کشورهای دنیا سفر کنه و ببینه آیا همه جا مثل وطن خودش زیبا و یا نه به همین دلیل به بهانه دیدن جزیره های کوچکی که در قلمرو پدرش بود سفر خودشو شروع کرد اما یه طوفان وحشتناکی کشتی او را به زمین ناشناخته ای برد و بیشتر همراهانش با حمله درندگان کشته شدن و خود شاهزاده تونست به کمک سنگ جادویی نجات پیدا کنه او بدون اینکه دیده بشه از میان اونها گذشت و خودش به ساحل رسوند و سوار کشتی شد. اولین جزیره ای که سر راهش قرار گرفت جزیره رزها بود. او مستقیم به دربار پادشاه رفت و به محض اینکه چشمش به شاهزاد خانم افتاد مثل همه کسانی که او را دیده بودند به او علاقمند شد. چند ماه از اقامت او در آن جزیره نمیگذشت که شاهزاده هوا دختر را دزدید، و همه مردهای اونجا رو غصدا رو اندوه دین کرد. اما ناراحتی همه یک طرف غ و اندوه شاهزاده یک طرف. او شب و روز به دختر فکر میکرد و نمیتونست فراموشش کنه. او با بغز گفت: افسوس من؟ دوباره اون دختر را آیا خواهم دید؟ چه کسی میدونه او الان کجاست و زندانی کیه؟ من یک انسان معمولی هستم اما عشق به من قدرت میده. من همه دنیا رو میگردم تا اونو پیدا کنم. او اینو گفت و از دربار خارج شد و خودش رو برای سفر آماده کرد. شاهزاده روزهای زیادی به جستجو ادامه داد بدون اینکه حتی یک نشونه از شهزاد خانوم گمشده پیدا کنه سرانجام، یه روز صبح، هنگامی که از میون جنگل انبوهی میگذشت چشمش به قصر باشکوی افتاد که در انتهای یک ردیف از کاج‌ها قرار داشت قلب گواهی داد چیزی که میبینه زندان روزالیه او با قدمهای سری خودشو به دروازه قصر رسوند که شبیه یک عقیق درشت بود با باز شدن دروازه شاهزاده وارد قصد شد و از سه حیات دیگه هم رد شد که اطراف اون نهرهایی پر از آب روون جریان داشت و پرندههایی با بالهای درخشان در هوا پرواز می کردن. همه چیز زیبا و خیره کننده بود اما شاهزاده اصلا به اطرافش توجه نمیکرد تمام فکر او متوجه، پیدا کردن شاهزاده بود. اما هر دری که باز میکرد و هر جایی را که میگشت نه روزالی را دید نه هیچ کس دیگر رو. سرانجام دیگه هیچ جایی نبود که او نگشته باشه. جز یه باغ کوچیک که در وسطش با درخت پرتقال و ساختمانی ساخته شده بود در هر گوشه اون ساختمون اتاق کوچکی دیده میشد. سه تا از آنها خالی بودند، و فقط چند مجسمه و مقداری وسایل زینتی در آن به چشم میخورد. اما در اتاق چهارم شاهزاده نامری ای روزالی رو دید. اما خوشحالی او طولی نکشید چون همون موقع شاهزاده هوا را دید که جلوی پای دختر زانو زده و ارتماس میکنه که اما هرچه حرف میزد بیفایده بود. دختر فقط سرش رو تکون میداد. و گفت نه تا منو از پدرم که خیلی دوستش داشتم جدا کردی و دیگه حتی همه زیبایی های دنیا هم نمیتونه منو خوشحال کنه برو من جز نفرت و بیزاری هیچ احساس دیگهی نسبت به تو نخواهم داشت او بعد از گفتن این حرفها برگشت و به اتاق خودش رفت شازاد نامرئی بدون اینکه دختر به فهم دنبالش رفت اما میترسید شازاد خانم؟ جلوی دیگران متوجه حضور او بشه. به همین دلیل تصمیم گرفت تا تاریک شدن هوا صبر کنه و چند ساعتی را که وقت داشت شعری طولانی برای دختر نوشت و کنار تختش گذاشت. بعد از این کار، همه فکر و ذکرش این بود که بهترین راه برای ارتباط برقرار کردن با روزالی چیست و تصمیم گرفت وقتی شاهزاده هوا مثل هر سال با مادر و برادرهاش جلسه تشکیل میدن، از فرصت استفاده کنه یه روز روزالی تنها توی اتاقش نشسته بود و به مشکلاتش فکر میکرد که ناگهان دید مداد روی میز خود به خود حرکت کرد و مشغول نوشتن روی یک کاغذ سفید شد دختر که از وجود شاهزاده نامرعی خبر نداشت خیلی تعجب کرد و وقتی قلم از حرکت ایستاد فوری به طرف میز رفت و دید روی کاغذ شعر زیبایی نوشته شده و به او میگه کسی هست که او رو با تمام وجود دوست داره و میخواد مشکلات و قصه هاشو حل کنه و تا وقتی او را از دست مردی که از او متنفر نجات نده آروم نمینشینه دختر که قوت قلبی پیدا کرده بود داستان زندگیشو تعریف کرد و از قریبی جوانی گفت که وارد قصر پدرش شد و دل او رو, رو بود و از آن روز به هیچ کس دیگری جز او فکر نمی کنه. با شنیدن این حرفا شاهزاده دیگه نتونست خودش رو پنهان کنه سنگو از دهانش بیرون آورد و به پای روزالی افتاد آن دو پس از ابراز خوشحالی از این دیدار شروع کردند به کشیدن نقشه فرار از دست شاهزاده هوا اما کار راحتی نبود چون سنگ جادویی فقط به درد یه نفر میخورده برای نجات دادن روزالی شازاده جزیره طلایی مجبور بود با دشمنش رو بشه. اما روزالی قبول نکرد و گفت نه شازاده. از وقتی شما کنارم هستید دیگه احساس نمیکنم زندانی هستم. در زمد شما تحت مراقبت فرشته ای هستید که همیشه در این فصل به ملاقات پدرتون میاد. فوری به سراغ او برو، و وقتی پیداش کردی خواهش کن یه سنگ دیگه با همین نیروی جادویی به شما بده اگه موفق شوید دیگه برای فرار کردن مشکلی نخواهیم داشت چند روز بعد شاهزاده هوا از قصر مادرش برگشت اما شاهزاده نامرئی هم تازه قصر را ترک کرده بود او یادش رفته بود از چه راهی اومده و چند روزی در جنگل سرگردون شده بود اما بالاخره وقتی به خونه رسید فرشته از اونجا رفته بوده او هیچ راهی نداشت جز اینکه منتظر ملاقات بعدی فرشته بمونه بزاره روزالی سه ماه دیگه اونجا قصه بخوره این افکار او را آزار میداد و تصمیم گرفت پیش روزالی برگرده یه روز وقتی آهسته در جنگل قدم میزد چشمش به کاج بزرگی افتاد که تنش باز شده و دو شازاده از اون بیرون اومدن اونها مشغول صحبت بودن و چون قهرمان قصه ما سنگ جادویی را در دهانش گذاشته بود آن دو فکر کردن تنها هستند و با صدای بلند به گفتگوشون ادامه دادن اولی گفت چی؟ یعنی تو میخوای همیشه با موضوع خودت را عذاب بدی؟ یعنی در تمام سرزمین تو هیچ چیز دیگه نیست که تو را مشغول کنه؟ دیگری جواب داد چه فایده داره که شاهزاده خاک باشم و مادرم ملکه چهارم انصر باشه ولی نتونم شاهزاده خانم آرژنتین رو به خودم علاقه کنم از نحسه که برای اولین بار او رو دیدم که در جنگل بین گلا نشسته دیگه نمیتونم از فکرش خارج بشم و با اینکه به او علاقه دارم مطمئنم که او هرگز به من توجه نخواهد کرد میدونی که من در قصرم سه اتاق زمان دارم. در اولی آینه های بزرگی هست که گذشته رو نشون میده. دومی زمان حال رو به تصویر میکشه و در سومی میتونم آینده رو ببینم. من بعد از دیدن آرجنتین به این اتاق رفتم. اما در اون به جای عشق فقط اهانت و تحقیر دیدم. ببین من چقدر به او علاقه دارم که با وجود چنین سرنوشتی باز هم او رو دوست دارم. این گفتگو برای شاهزاده جزیره طلای جالب بود چون شاهزاده خانم آرژنتین خواهر او بود و او امیدوار بود خواهرش بتونه شاهزاده خاک را راضی کنه که از برادرش بخواد روزالی را رو آزاد کنه او با خوشحالی به قصر پدرش برگشت و اونجا فرشته را دید که یک سنگ جادویی دیگه شبیه اولی از او هدیه گرفت بعد فرصت و از دست نداد و برای نجات دادن روزالی حرکت کرد و خیلی زود به جنگلی رسید که در وسط آن روزالی زندانی بود. اما وارد قصد شد. اثری از روزالی نبود. او همه جا را گشت. اما هیچ فایده نداشت. اونقدر ناراحت شد که دلش میخواست بمیره. اما ناگهان به بیاد حرفهای دوشازاده در باره اتاقهای زمان افتاد و فکر کرد اگه بتونه خودش رو به اون درخت کاج برسونه حتما میفهمه چه اتفاقی برای روزالی افتاده خوشبختانه او خیلی سریع به اونجا رسید و رمز ورود به اتاقها رو پیدا کرد و وارد اتاق زمان حال شد و در آینه روزالی بیچاره را رو دید که روی زمین نشسته و گریه میکنه و موجودات عجیب و غریبی او را محاصره کردند و شب و روز چشم ازش بر این تصویر شاهزاده رو ناامید کرد چون او نه جای قلعه رو میدونست نه میدونست چطور باید دنبالش بگرده اما تصمیم گرفت همه دنیا رو بگرده تا اونجا رو پیدا کنه او سفرش رو از راه دریا شروع کرد اما روی دریا هم بدشانسی آورد تازه کمی از خشکی دور شده بود که طوفان شدیدی شروع شد و بعد از چند ساعت مقاومت کشتی ها به صخره خورد تک تکی شد خوشبختانه شاهزاده به یک تخته شناور چسبید و بعد از یک نبرد طولانی با موجها و باد تونست خودش را به یک جزیره ناشناخته برسونه اما چیزی که باعث حیرت او شد شنیدن صداهای وحشتناکی بود که با آوازی زیبا و دلانگیز آمیخته شده بود کنجکاوی او برانگیخته شد و به راه افتاد تا اینکه چشمش به دو اجده های بزرگ افتاد که از دروازه یک جنگل محافظت میکردند حتی نگاه کردن به اونها هم ترسناک بود بدنهای هر دو پوشیده از های درخشان بودند دمهای پیش در پیچ و بلندشون تا کیلومترها ادامه داشت از دماغ و دهنشون آتیش زبونه میکشید و نگاهشون تن هر کسی رو می لرزون. اما چون شاهزاده نامری بود و اونها رو نمیدید و اونها هم نمی تونستن شاهزاده را ببینن، از میون اون دو گذشت و وارد جنگل شد شاهزاده فوری متوجه شد که وارد یک مسیر پیش در پیچ شده ساعتها سرگردون به این طرف و اون طرف رفت اما هیچ کس رو ندید در واقع تنها منظری که با آن روبرو شد دست های انسان هایی بود که دامچ از زمین بیرون اومده بودند و دور هر کدوم از آنها یک حلقه طلا بود که نامی روش نوشته شده بود. هرچی که جلوتر می رفت کنج کاویش بیشتر می شد تا اینکه به دو جنازه رسید که بسط دو ردیف سر روی زمین افتاده بودند دور گردن هر کدوم یه تناب و دستبندی هم به دستشان بود که روش نام اون دو نفر و نام دو شاهزاده خانم نوشته شده بود شاهزاده نامرئی مرده‌ها را شناخ هر دوی اونها پادشاه های دو جزیره بزرگ در همسایگی جزیره اونها بودند اما شاهزاده خانم ها براش ناآشنا بود او از اتفاقی که برای آن افتاده بود ناراحت شد و تصمیم گرفت اونها رو دفن کنه. اما به محض اینکه روی قبر و پوشون دستهای اونها از خاک بیرون اومدند و مثل بقیه دستها به طرف بالا موندند. شاهزاده براش ادامه داد و در حال فکر کردن به این اتفاقات عجیب بود که ناگهان مرد قد بلندی رو دید که از چهرش بدبختی میبارید. و تنابی ابریشمی به دست داشت که دقیقا هم رنگ تناب‌های دور گردن مرده‌ها بود مرد اول چند قدم جلوتر با مرد دیگری روبرو شد که مثل خودش ماهتم زده بود اونها در سکوت به هم نزدیک شدند و بدون اینکه حرفی بزنند تناب‌ها دور گردنشون پیچید و هر دو روی زمین افتادند شاهزاده به کمک اونها دوید تا تناپا رو باز کنه اما موفق نشد و مثل دفعه قبل آندو را دفن کرد و به راهش ادامه داد او احساس کرد باید خیلی احتیاط کنه وگرنه ممکن بود خودش هم قربانی نوعی تلس بشه او از میون دو اجده ها گذشت و وارد بوستان زیبایی شد که رودهای روان و گلهای خوشبویی داشت و مردها و زنهای زیادی در اون جمع شده بودند اما او نمیتونست چیزهای وحشتناکی را که دیده بود فراموش کنه امیدوار بود بتونه علتی برای اون اتفاقها پیدا کنه او متوجه دو جوون شد که با هم حرف میزدند نزدیکتر رفت تا شاید از صحبتهای اونها چیزی بفهمه شاهزاده گفت تو قسم خوردی تا آخر اون منو دوست داشته باشی اما من از بیوفایی تو می ترسم. احساس می کنم به زودی مجبور میشم به دنبال فرشته ناامیدی که حاکم نصف این سرزمین هست برم او همه عاشق‌هایی را که محشوقه هاشون اونا را فراموش کرده و امیدی به ادامه زندگی ندارند با خودش می بره. بعد اونها رو وارد مسیر پیتر پی میکنه. کنه اونها مجبورن با دستبندی که در دست دارند و تنابی که دور گردنشون هست تا ابد راه برن مگر اینکه با یه نفر دیگه که به اندازه خودشون بدبخت هست روبرو بشن اون وقت تناپ‌ها محکم میشن و هر دو به زمین میافتن تا زمانی که کسی از اونجا رد بشه و اونها رو دفع کنه مرگ وحشتناکیه اما برای من اگر تو دوستم نداشته باشی از زندگی هم شیرین تره دیدن این آشقان خوشحال در و غم شاهزاده رو بیشتر کرد او هر روز کنار ساحل قدم میزد و فکر میکرد یه روز که ناراحت و غمگین روی تخته سنگی نشسته بود و فکر میکرد دیگه هرگز نمیتونه از اون جزیره خارج بشه ناگهان در یک لحظه دریا به طرف آسمان رفت و صدای وحشتناکی همه جا پیچید بعد زنی را دید که زیر دریا بیرون اومد و دیوان وار سعی کرد از دست قول وحشتناکی فرار کنه پریادهای زن دل شاهزاده را به رحم آورد و او سنگ را از دهانش بیرون آورد و شمشیرش و کشید و به طرف قول حمله کرد تا زن بتونه فرار کنه اما هنوز به نزدیک دشمن نرسیده بود که قول حلقه را دور دستش انداخت و شاهزاده سر جاش موند و دیگه نتونست حرکت کنه قول خودش رو به تومش رسوند و دختر رو به قره دریا برد بعد چند پری دریایی را فرستاد تا شاهزاده جزیره طلایی رو با زنجیر ببنده و چند لحظه بعد مرد احساس کرد او هم به داخل آب کشیده میشه و همه امیدش رو برای دیدن دوباره شاهزاده خانوم از دست داد و اما قولی که شاهزاده نامرئی را گرفتار کرده بود پادشاه دریا و سومین پسر ملکه چهار عنصر بود اون حلقه جادویی که او را دور دست شاهزاده انداخته بود باعث میشد انسان بتونه زیر دریا زنده بمونه. به همین خاطر وقتی پریهای دریایی شاهزاده جزیره تلایی را با زنجیر به زیر دریا کشیدند، او تونست خانه هیولاهای عجیبی را ببینه و جنگلهای جلبک را که از کنارشون رد می تماشا کنه. بلاخره اونها به زمین ماسی وسیعی رسیدند، که دور تا دورش پر از سنگ و سخره بود و روی بلندترین صخره گول نشسته بود وقتی چشم او به شاهزاده افتاد گفت آدمی زاده پر رو حقته که بمیری اما من میذارم زنده بمونی تا بیشتر زجر بکشی حالا تو رو میون گروهی که من از شکنجه دادن اونها لذت میبرم میفرستم بعد از این حرف شاهزاده بیچاره به سخری بسته شد اما او در این بد وقتی تنها بود چون دور تا دور جایی را که او را بسته بودند شاهزاده ها و شاهزاده خانم دیده میشدند که قول آنها را اسیر کرده بود در واقع تفریح او این بود که توفام به وجود بیاورد و به تعداد زندانیهاش اضافه کنه چون دست های شاهزاده جزیره تلایی بسته بود او نمی تونست از سنگ جادویش استفاده کنه و روزها شبها را با فکر روزالی می کرد. اما بالاخره یه روز قول به این فکر افتاد که برای سرگرمی چند تا از زندانی ها رو به جون یک دیگه بندازه. قرعه به نام شاهزاده افتاد و زنجیرهاش رو باز کردم. به محض محزینگه او آزاد شد، سنگ و تو دهنش گذاشت و نامرعی شد. گول که از غب شدن ناگهانی شاهزاده خیلی تعجب کرده بود، دستور داد همه راه ها رو ببندند اما دیگه دیر شده بود چون شاهزاده از میون سخراها فرار کرده بود او مدتها در جنگر سرگردون بود، از کنار حیوله ترسناک گذشت. از سخت سنگ ها و ها بالا رفت از بین درخت‌ها گذشت تا اینکه به کنار دریا رسید و کوهی را دید که قبلاً تصویر اونو در آینه زمان زمان حال دیده بود اونجا زندان روزالی بود با خوشحالی از اون بالا رفت الی این کوه ابر‌ها را سوراخ کرده بود و در نوک اون قصری دیده میشد. مرد وارد شد و وسط یک راهروی دراز اتاقک شیشه ای دید که روزالی در اون نشسته و موجودات عجیب و غریب شب و روز مواظبش بوداند. اون اتاقک نه در داشت و نه پنجره و شاهزاده نمیدونست چطور باید روزالی را رو از وجودش آگاه کنه گریه های شبان روزی روزالی هم قلبش رو به درد آورده بود یه روز که روزالی در اتاقش قدم میزد با تعجب متوجه شد که دیوار شیشه ای اتاق را بخار گرفته مثل اینکه کسی کنار اون نفس کشیده باشه جالب اینکه به هر طرف که دختر حرکت میکرد دیوار اون قسمت را بخار میگرفت این مسئله کافی بود به شاهزاده خانم بفهمونه که جوون مورد علاقش برگشته برای اون که شاهزاده هوا به چیزی مشکوک نشه دختر با او مهربون شد تا اگه تقاضایی داشت اونو رد نکنه اولین درخواست دختر این بود که اجازه داشته باشه روزی یه ساعت در راهرو قدم بزنه با خواستهٔ او موافقت شد و شاهزاده نامرئی هم فرصت را از دست نداد او فوری سنگ رو به دختر داد و شاهزاد خانم اونو تو دهانش گذاشت خشم و عصبنیت شاهزاده هوا از ناپدید شدن دختر آبر توصیف نه بود. او به نیروهای هوا دستور داد به همه جا پرواز کنند و روزالی رو برگردونند اونها فوری به پرواز درآمدند و در همه جای زمین پراکنده شدند روزالی و شاهزاده نامرعی دست در دست هم خودشون رو به در راهرو رسوندند و از اونجا بی سر و صدا وارد باغ شدند اونها کم کم داشتن احساس امنیت می که ناگهان یه هیولای ترسناک به طور اتفاقی به روزالی و شاهزاده خورد دختر بحشت زد متوجه شد دستش از دست پسر جدا شد. اونها برای اینکه نامرئی نامرعی بمونن نمی تونستن حرف بزنن. در می میدونستند که نیروهای هوا همه جا هستن و با کوچکترین صدا اونها را پیدا می کنن. به این ترتیب تنها کاری که میتونستند انجام بدن این بود که به این طرف و اون طرف برند و سعی کنند دست یک دیگر رو پیدا کنند اما افسوس لذت آزادی مدت زیادی طول نکشید شاهزاده خانوم که بیهوده در باغ بالا و پایین میرفت و سرگردون شده بود بالاخره کنار یه فواره ایستاد او همانطور که قدم میزد روی درخت درختها مینوشت شاهزاده عاشق اگه این یادداشت رو را میبینی بدون که من اینجا کنار این فواره نشستم و آب اون رو با اشک چشم ها مخلوط میکنم. یکی از آن موجودات این یادداشت را خوند و برای اربابش تکرار کرد. شاهزاد هوا هم خودشو نامرئی کرد و به کنار فواره رفت و دنبال روزالی گشت. وقتی دختر نزدیک شد دستشو جلو برد. روزالی که فکر میکرد این دست آشقشه با خوشحالی اونو گرفت. بعد شاهزاده هوا تنابی رو دور دست های دختر بست و در حالی که دیگه دیده میشد به نیروهاش دستور داد دختر رو داخل یه گودال بندازند. در این لحظه بود که شاهزاده نامرعی به اونجا رسید و وقتی دید ارباب اون موجودات تنابی رو به دنبال خود میکشه و به هوا میبره فوری حد زد که روزالی گرفتار شد. او به قدری ناامید شد که یک لحظه تصمیم گرفت به زندگیش پایان بده. او فریاد زد با این بد وقتی ها چه کنم؟ فکر می کردم دیگه مشکلات به پایان رسیده. اما همه چیز بدتر شده. چه کاری از دستم برمیاد؟ دیگه هرگز نمی بفهمم این هیولا روزالی رو کجا پنهون کرده؟ مرد جوون با غم و اندوه تصمیم گرفت خودشو بکشه و همون قم و قصه کافی بود تا او بکشتن بره که ناگهان یادش اومد که اتاقهای زمان می توانند به او بگویند روزاری کجا زندونی شده و کمی آروم شد. او به راه افتاد و بعد از چند ساعت به دروازه معبدی رسید که دو شیر بزرگ کنارش ایستاده بودن. شاهزاده نامرعی بود و بدون اینکه آسیبی ببینه از دروازه گذشت. در وسط معبد مهرابی بود که روش کتابی قرار داشت و پشت مهراب پردهی آویزون بود. شاهزاده به مهراب نزدیک شد و کتاب را باز کرد. داخل اون اسم همه عاشق‌های دنیا نوشته شده بود و در یک از صفههای کتاب خوند که شاهزاده هوا روزالی رو به جایی برده که از هیچ راهی غیر راهی که در چشمه طلای وجود دارد نمیتوان به اون وارد شد. شاهزاده تا به حال اسم این چشمه را نشنیده بود و نمیدونست کجاست. او با خودش فکر کرد شاید هر قدمی که برمیدارم منو از اون دورتر کنه. با این حال خدا را شکر که فهمیدم او هنوز زنده هست. شاهزاده نامری از معبد بیرون اومد. جلوی او شش راه وجود داشت و هر کدوم از یه قسمت از جنگل عبور می کرد. مرد گیت شده بود و نمی دونست از کدوم راه بره که ناگهان متوجه شد دو نفر از جاده سمت راست به طرفش میان. اونها شاهزاده خاک و دوستش بودند و شاهزاده که دلش میخواست از خواهرش آرژانتین خبری بشنوه دنبال اونو رفت تا به حرفهاشون گوش بده. شاهزاده خاک میگفت: فکر میکنی اگه میتونستم زنجیرهامو پاره نمی کردم. من میدونم شاهزاده خانم آرژانتین هرگز عاشق من نخواهد شد اما هر روز برام عزیزتر میشه و اما مشکل من فقط این نیست. وحشت من از اینه که روزی او به یک نفر دیگه علاقه مند بشه به همین دلیل تصمیم گرفتم به کمک چشمه طلایی خودمو از این درد و رنج خلاص کنم اگه یه قطره از آب اون چشمه روی ماسه های اطراف بیفته اسم رقیب من در اونجا نوشته میشه لحظه دردناکی خواهد بود اما میخواهم تکلیفم معلوم بشه و خیال خودمو راحت کنم شاهزاده نامرعی با شنیدن این حرفها شاهزاده خاک را مثل سایه تغییب کرد تا اینکه به چشمه طلایی رسیدند آشق غمگین آهی کشید و انگشتش رو در آب فرو کرد و یک قطره از اون رو روی خاک چکند یک لحظه بعد اسم شاهزاده آتش یعنی برادرش روی زمین نقش بست شاهزاده خاک از شدت حیرت و تعجب از حال رفت و در آغوش دوستش افتاد. در این مدت شاهزاده نامرئی به این فکر میکرد که چطور میتونه پیش روزالی بره. از وقتی که حلقه اون گول به دستش خورده بود میتونست در آب هم مثل روی زمین نفس بکشه. به همین خاطر فوری توی چشمه شیرجه زد. او بعد از گذشتن از دری که گوشه از چشم قرار داشت به کوهی رسید که پای آن سخره بلندی وجود داشت که یک حلقه آهنی به اون وصل شده بود. سر تناب بلندی به حلقه آهنی بسته شده بود. شاهزاده حد زد که دست و پای شاهزاد خانوم با این تناب بسته شده و سری شمشیرشو کشید اونو برید. یک لحظه بعد او دست های شاهزاد خانوم رو در دستهای خودش حس کرد چون با اینکه شاهزاده هوا به دختر التماس میکرد که مرعی بشه او سنگ جادویی رو از دهانش بیرون نمیآورد. به این ترتیب شاهزاده نامری و روزالی دست در دست هم از کوهستان دور شدند اما چون شاهزاده خانم نمیتونست زیر آب نفس بکشه رد شدن از چشمه طلایی براشون غیر ممکن بود او دو نفر در حالی که نامرعی بودند و هیچ حرفی نمی زدند کنار چشمه نشستند و از ترس طوفان وحشتناکی که خشم شاهزاده هوا به وجود آورده بود به خود میلرزیدند این طوفان چند روز ادامه داشت تا اینکه گرمای سوزانی از راه رسید آسمان رعد و برق زد و جرقه ها آتش همه جنگل ها و مزرعه ها را سوزوند. در یک لحظه رودخانه ها و چشمه ها خشک شدند و شاهزاده از فرصت استفاده کرد و همراه شاهزاده خانم از چشمه طلایی گذشتند مدت زیادی طول کشید تا آنها به جزیره طلائی رسیدند اما بالاخره پایشون به اونجا رسید و دیگه هرگز اونجا رو ترک نکردند